بخش دوم آب پدیده های سیال و جاری و متغیر زندگی قومیه بیدار که شدم دیدم امشب ماه در آسمان شکوه خاصی دارد چنان درخشان و چنان زیباست که گویی مرواریدی قولاسا بالای سرمان آویخته از رخت خواب بیرون آمدم از پنجره به بیرون به حیات غرق مهتاب نگاه کردم چون این زیبایی هم مهمانی چشم است هم مهمانی دل اما ما هرقدر هم چشم نواز باشد نداروی لرزش قلبم است نه دوای لرزش دستم امشب هم ناگهان از خواب پریدم که را آهسته گفت، سرورم، رنگ رخت پریده، نکند باز همان خواب را دیده ای، برایت پیاله ای آب بیاورم. گفتم، نگران نباش، تو بخواب. مگر چه کاری از دستش برمی آید؟ چه کاری از دست خودم برمی آید؟ مگر ممکن است رؤیاهایمان از سرنوشتمان جدا باشد سرنوشتمان هم که در اصل دست خودمان نیست علاوه بر این با خود میگویم حتما دلیلی دارد که مدام همان خواب را میبینم حالا که چهل شب است این خواب را میبینم پس حکمتش گشوده می شود و میفهمم رویایم نشانه چیست؟ یا همکنون یا بهزودی با آنکه شروع رؤیا هر شب عوض می شود پایانش همیشه یکیست انگار این رؤیا بنایی عظیم است و من هر شب از دری جداگانه واردش میشم. این بار در خواب دیدم. در اتاقی که به نظرم بسیار آشنا می رسید و همه جایش قالی عجم انداخته بودند، رحلی جلوه خود گذاشته ام و کتاب می خانم. درست روبرویم درویشی نشسته بود. قامتش زریف و بلند بود. صورتش را با دستمالی مالی پوشانده بود. شمدانی پنج شعله در دست داشت برای آنکه راحت مطالعه کنم نور را به طرفم می‌گرفت پس از مدتی سرم را بلند کردم و به درویش نگاه کردم در صفحه‌ای که می‌خواندم یک ترکیب اضافی توجهم را جلب کرده بود خزانه قی همان لحظه که می‌خواستم این عبارت را تفسیر کنم با حیرت و وحشت متوجه چیزی شدم نگو چیزی که گمان می‌کردم شمدان است دست راست درویش بوده پنج انگشتش را به جای پنج شمع به طرف رحل می‌گرفته انگشتانش شعلور شده بوده و میسوخته. نگو درویش خودش را میسوزانده و به من نور میتابانده دست پاچه خواستم آبی بیابم اما کنارم نزدیکیم یک قطر آب هم نبود نه کوزه‌ای نه ابریقی خرقه را درآوردم و روی شعله های آتش انداختم اما وقتی خرقه ام را دوباره برداشتم دیدم زیر خرقه چیزی نیست جز شمعی روشن درویش ناپدید شده بود از این قسمت به بعد خوابم هر شب یکسان است در خانه ام هستم اتاقها را یکی یکی میگردم تا آن درویش را بیابم همه ی گوشه و کنارها را می گردم. بعد به حیات میروم همه جا قرق گلهای زرد است. به چپ فریاد می زنم. به راست فریاد می زنم. اما کسی که دنبالش می گردم انگار آب شده رفته توی زمین. التماس کنن می گویم، نرو دستم به دامنت، ای عزیز تر از جانم کجایی؟ انگار صدایی نحس و بدشگون شنیده باشم تکانی میخورم و به طرف چاه می روم به آبهای تاریک که ته چاه موج می خورند، چشم می دوزم ابتدا چیزی نمی بینم اما همین که شعاهای قمر مجموع می شوند و برویم می بارند حیات به یک باره غرق نور می شود. همان هنگام متوجه چیزی می شود. ته چاه یک جوف چشم سیاه هست. چشمان مرده به چشمانم دوخته شده. وداع می گوید با این عالم. یکی فریاد می زند کمک کنید کشتندش. کسی چه می داند؟ شاید آنکه فریاد میکشد منم صدایم از فرت استراب چنان عوض شده که نمی شناسمش. و آن هنگام فریاد میکشم پشت سر هم و خیص عرق فریاد میکشم تا وقتی زنم بیدار شود و تنگ در آغوشم گیرد تا وقتی سرم را روی سیناش بگذارم و او مهربانانه در گوشم نجوا کند سرورم خوبی نکند باز همان خواب را دیدی دیرگاه شب هنگامی که کر را دوباره به خواب رفت آهسته به حیاط رفتم همه جا ساکت بود چشمم به چاه که افتاد بر خود لرزیدم با این حال نزدیکش شدم رفتم کنارش نشستم نسیمی میان درختان وزید و برگها خشخشی نامحسوس کردند، در چنین لحظاتی غمی مبهم وجودم را فرا می گیرد. دلیلش را نمیدانم حال که زندگیم روشن بختم یار و عوحالم عالی است پروردگارم سن اعمت را که بیشترین ارزش را برایشان قائلم به من ارزانی داشته است. علم، ارفان و توانایی هدایت دیگران به راه صحیح. تا به سی و هفت سالگی برسم خدا بیش از آن چه میخواستم به من داد. از علم کشف الهی که انبیا و اولیا و علماء هر یک به فراخور خیش از آن بهره دارند، به قدر خود سهم بردم. پدر متوفایم دستم را گرفت. از رهله تدریسات بهترین اساتید زمان گذشتم. با خود گفتم، خاندن، کوشیدن و دیگران را روشن کردن دین بنده به خداست. و برای عمق بخشیدن به آگاهییم بسیار خواندم بسیار کوشیدم. استادم سید برهان الدین همیشه می گفت چون وظیفه رساندن پیام حق به خلق و کمک به ایشان در تفکیک خطا و ثواب را به عهده گرفته هم، بنده محبوب خدایم. می گفت شکر گزار باش جلال الدین، چون این امری قسمت همه نمی شود سالها در مدرسه تدریس کردم با دهها عالم شریعت به مباحثه پرداختم در فقه و حدیث بسیار پیش رفتم هر هفته در بزرگترین مسجد شهر مجلس وعظ دارم طلبه که نزدم آموزش دیدهاند آنقدر زیادند که دیگر شمار و نامشان در یادم نمیماند هنگامی که مردمان پیشم می آیند و میگویند کلامم بر دلشان آب میپاشد و راهنماییشان میکند وقتی دانش و هنرم را متح میکنند به خود میبالم خدا را هزاران بار شکر که خانوادهای خوشبخت شهرت و اعتباری بی خدشه، دوستانی قدیم، مریدانی صادق و طلبه‌هایی دارم که از علمم مستفیز می‌شوند. در طول عمرم فقر و نیاز را نشناختم. پس از فوت همسر اولم گویی دنیا بر سرم خراب شد. خدا از کر راضی باشد. زیرا در سایه وجودش طعم محبت و شادی را بار دیگر چشیدم پسرانم نیز هر دو در خانه‌ای مملو از سعادت بزرگ شدند با آنکه هر دو در محیطی یکسان یافتهاند، هنوز هم در حیرتم که چرا اینقدر با یکدیگر فرق دارند انگار در خاکی یکسان دو دانه بذر یکسان را کنار هم بکارید، آب و آفتابی یکسان بخورند اما به یک ببینید دو نوع نبات مختلف رشد کرده است به هر دوشان افتخار میکنم کنم، همانطور که دختر ام نیز مایه افتخارم است کیمیای عزیز دردانه هم دختری بسیار عاقل و سرشار از محبت و انسانیت است بیرون از خانه خوشبختی دارم درون خانه هم نیز خوشبختی دیگر با همه این احوال چرا در درونم خلعی هست که درکش نمی کنم و شرحش نمی توانم بدهم خلعی که روز به روز بزرگتر می شود این احساس نقصان مانند موش موزیانه و هریس روح را می جود. هر جا که بروم خلع درونیم نیز با من می آید انسانی اینقدر کامل باز ممکن است احساس نقصان کند یا در عین خوشبختی احساس غم کند من که روزهایم اینقدر درخشان و بیعیب و نقص است و از موفقیتی به موفقیت دیگر از ای به رتبه دیگر میرسم چرا باید هر شب در خواب با آه و افسوس به دنبال کسی بگردم؟ انگار در درونم رازی است که نه از دیگران بلکه از خودم پنهان میشوند. اگر روزی درویشی را که در خواب میبینم در عالم واقع پیدا کنم سرچشمه آن راز را از او می‌پرسم اما اگر نتوانم بار این حقیقت را بکشم اگر بر شانههایم سنگینی کند آن وقت چه شگفتا من جلال الدین تا حال گمان می‌کردم ترس و وسوسه را نمی‌شناسم